سلسه دهان الحمدلله و الله على و لا انافیه تو جنس از نواسه لا ایست که نعفی کننده میشه میکنه جنس لا انافیت و مجز خب این چه عملی داره؟ میگه و تعمل و عمل ایمال و عمل میکنه عمل ایمال یعنی نصب به اسم میدهد و رفع به خبر و, و عمل و عمل ایمال شرطش چیه؟ میگه به شرط عدم دخول جارن علیه شرط اولش اینه حرف جردی برش داخل نشه اگه حرف جرد داخل بشه دیگه عمل نه. مثل جعه تو جعه تو بلا, زادن. تو بلا زادن. و غذب تو غذب تو دن زاده و غذب تو من لا شیعه من لا شیعه با درمت و منلا قذب تو منلا شیئن من و جه تو بلا زادن. یعنی چی؟ یعنی جه تو بلا زادن آمدن بدون زادو و شد قذب تو منلا شیئن یعنی قذب کردم عصبانی شدم بدون اینکه چیزی. چی دونی؟ چجور ترکیب میکنی؟ میگید جه تو فیل و فایل بلا زادن. لا اون وسط هیچ بزادن این را. جار و مجرور متعلق به تو؟ من لا شیئن هم همینطور بار گفتیم من شی جار و مجرور متعلق به چینطور و دیگه لا عمل بکن چون حرف جر قویست حرف جر اونو خونسا میکنه و خودش عمل میکنه اگر این حرف جر نبود ما باید زاد رو چکار میکردیم اسم لا قرار میدیم حالا که حرف جر اومد حرف جر قویست زاد رو به عنوان مجرور خودش برمیداره و دیگه ما لا را عمل نا. از شرط اول به شرط عدم دخول جارن این شرط. حالا بینید چه خصوصیت داری تو هدایی من گفتم که به چند شکل سلام داره. و اسم و اسمها با خبرش کاری نداریم خبرش مرفوع است و خبر مبتدا هم هست همون خبر مبتده که بوده هست هیچ برگی دیگه نمی کن. پس خبر این جای بحث نداره اسمشه که جای بحث داره که اعرابش تغییر میکنه میگه و اسمها امکان مزافن. اسمش اگر مزاف باشه و اسمها امکان مزاف او شبیه بهی یا شبیه به مزاف باشه نسبت منصوب میشه منصوب میشه یعنی چی؟ یعنی معرب از تو منصوب مقنی هم نیست نصفه یعنی اعرابه معربه چون اضافه معارضه دارد با بنا اضافه از خصوصیت چیه؟ اسم پس اسمش اگر مضاف بود یا شبیه به مضاف بود چی میشه؟ معرب میشه با منصوب نسبه. و وعله لا مرک است یعنی ان و ان لا و اگر نبود یعنی چی یعنی مزاف یا شررف مزاف نبود اسمش مزاف یا ش مزات نبود یعنی مفرد بود من اینجا مفرد مفرد در مقابل چیه مزاف و ش مز و ال یعنی اگر مفرد بود یعنی مزاف یا ش مزاف نبود بنییه می بود مبنی که بشه محلن میشه چی؟ محلن میشه, محلن میشه. بنیه علامایون سببه مبنی میشه اون کلمه اسم بر هر چیزی که نصبش به اون بوده حالا اگر مثلا فرض کنیم کلمه مسلمات بیاد مسلمات بگیم لا مسلمات فداد باید بگیم لا مسلمات فدار. نه. لا مسلمات فداد وجا حاصل یعنی هر چی که نصبش مثلا اگه تслиه باشه میگیم چی لا مسلمین نه نصبش به اینه لا مسلمین فتا میگیم مبنی به یاونی یا اگه جمع باشه میگیم لا مسلمی نه فتا جا حاصل مسلمی پس بنابراین مبنی میشه بر اون چی که نصبش به اون. ونیا الامایون سببه حالا مثال به زمین میگه نه بود. لا رجل مبلی بر لا رجل چون نسبش اون به بوده الان به ناشم به چیه این چون نسبش به یا و بوده به ناشم به چیه به یا و نونه چون مضاب شده به مضاب نیستم لا رجل اینه آه. لا مسلمینه جمع دلدار. لا مسلماته اینه مثالایی که من اضافه زدم که بتونید حالا اگه مضاف باشه چی؟ مثل لا صاحب برن ممغوتون توی دایه مثال زدم. لا صاحب برن ممغوتون یعنی چی؟ یعنی هیچ انسان نیکوکاری مورد غذب لا صاحب پیرن منغوته مزار شعبیه مزار لا حسنن فی لهو معزوجون عليه لا حسنن فی لهو معزوجون عليه ينتي يعني یعنی یعنی هیچ آدمی که کارش خوب باشه مورد غذب؟ نیست لا طال ان جبلن موجودن. <تصفيق> <تصفيق> لا تال انجبلن موجودون لا اف زلم انکه موجودون سه تا برای به مضاف نصال زبن یکیش چیه؟ ما بعدش پارل از تو مرسول لا حسن انده یکی مابعدش منصوب است مفعول لا طالبن جبلا یکی مابعدش جارو مجبوره پس بنابر این مابعدش تمام کننده شو حالا می‌خواد فایلش باشه یا مفعولش باشه یا جارو و مجرور یعنی مفعول به واسطه حالا شرط دیگه چی شرط لااین اپ جنسیو میگه ویشتره تو یه شرطش این بود که حرف جر بهش داخل نشه شرط دیگه. و یوشتر تو تنکیرو شرطش اینه که اسمش چی باشه نگره چون جنس در ضمن چی پیدا میشه نکره دیگه ما رجور که میگیم دلالت رو از جنس میکنه مرد آن زید بگیم خب دلالت رو از میکنه جنس رو مم. و یوشتر تو تنکیرو یک و مباشرت اتو هوله ها مباشرت اتو تنکیرو هول میخوره به اسم مباشره رو رو میکنه به اسم و ها به لام و شرط دیگه اینه که بین لام و اسمش چیزی فاصله نکنه به هم بچسبن مستقیم مباشر باشد اسم با لام چون میخوان مبنی بشن دیگه میگن اینا مبنی شدن به خاطر اینکه با هم ترکیب شدن یعنی لام و اسمش با هم چی شدن؟ مرکب شدن یه قولیه خب لذا شرط اینه که چی؟ که این همیشه به اسم حالا مثلا همون لا رجل فدار است. لا رجل فدار شما فدار رو مقدم کنیم دیگه عمل نمیکنه میشه لا فداره رجل لا فیها لغون مقدم باشه میشه مقنی اسم معخر که باشه دیگه عمل مباشره تو گوی نهار حالا فعل ار رفه اگر یه موقع اسمش چی شد؟ معرفشون دید او فسله فسله نه. او فسله فسله یعنی تفصیل داده شد فسله یعنی جدا شد فسله داده شد او فسله یا مباشر نبود و بینشون فاصله افتا احملت احملت یعنی چی؟ احملت لا دیگه یعنی لا محمل میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه عمل ممی کن که عمل احملت اون محمل میشه دیگه عمل مهملت. و کررد و باید هم تکرار بشه. پس اگر اسمش معرفه شد یا بین اسم و خبرش چی بین اسم و لا فاصله شد چیزی در اینجا دیگه لا عمل نمی کند یک وسانیان لا باید تکرار بشه حالا نگاه کنید ساده لا زیدن اددار لا زیدن تکرار ولا امرون این ای تکرار شده نشه بلام چون باید یه ذره لاقل دوتا تا بشن که یه کمی دلالت بر جنسو بکنه یعنی یه مرد لاقل از جنسی باش لا زیدن قد داره ولا یک حالا دومین لا قد داره رجالان ولا امرهاتون در اولی چون به معرفه داخل شده دیگه عمل نکرده و تکرار شده در دومی چون جای اسم خبر عوض شده و بین لا و اسمش باصله شده به وسیله خبر دیگه لا عمل نکرده و بگید تکرار هم اون ولا امرهاتون میگید وا وا واعتفه لا تحکید این داره میکنه امرهاتون اف که به جایه مشخص پس احملت و کرده را. خب تفسیراتون این تفسیر در واقعی حالت تمرین داره برای لای نفی جنس ما یه لای داشتیم به معنای لای مشبهتون به یه لا الان خوندیم که لای چی روی؟ نفیه جنس لای مشبهتون به لیسا رفع به اسم میده نسبه به خبر آه؟ و لای چی؟ نفیه جنس نسبه به اسم میده رفع به خبر اکسه هم شد حالا یه کلمه ای داریم لا هوله ولا قوته الا بالله لا حوله ولا قوته الا بالله این لا حوله ولا قوته الا بالله رو تنج شکل میگه میشه بخونیم از نظر عقلی و از نظر نحوی میشه په شکل بخونیم ولی اونی که در شرعه رسیده و باید گفته بشه لا هوله ولا قوته لا یه صورت بشه. بعد میگه چهار صورت دیگه هم میشه براش چیکار کرد؟ تصور کرده فرقی. مشخص ده؟ لا هوله ولا قوته یعنی هیچ هول و اجتنابی از گناه نیست و هیچ قوتی در قاعد نیست مگر به وسیله خدا رحمت اوست که شامل می شود البته به شرط که انسان استخباق یا بد بود بر ترک و اجابت به خواهد تبصیلتو لکفی نهوه برای تو است در ماننده حالا این مثال رو می زنیم ماننده هم شما هر کجایی که لا تکرار شده باشه و به همین شکل لا حول ولا قفته. لا حول ولا قفت الا میگه شما براتون جایز 500 و جهن پنج شکل براتون از نظر جایزه جایز ایده یک کک میدیم سید ترکیج ترکیب فتحو هما همون ترکیبی که خیلی سه. هر دو رو چکار کنیم فتح بدیم یعنی هر دو باشن مردی بر فتحو هما علال اصله علال اصل یعنی برای بر این که هر دو لایه نفی جنس باشن, باشن. لایه نفی جنس کلچتا رو ترکیب میکنیم میگیم لا لایه نفیه جنس حوله مبنی بر فرد محلن منصوب اسم لا حوله مبنی بر فرد محلن منصوب اسم لا موجودون خبرش یعنی لا حوله موجودون حس بود واضحه است لا لا اینا فی جنس تاس اقبتا مبنی بر اثر محلن منسوب اسم لا موجوداتن خبرش فرض این لا لا استثناءیه استثناء مفرد امه الله جاره مجبور متعلق به اون موجودون و موجودات یعنی نیست هیچ هوی موجود غیر به خدا و نیست هیچ قوتی موجود مگر به وسیله اعلی الله جاره مجبور متعلق به اون موجودان و موجودات چند تا جمله داشتم پیش میرم چند تا جمله داشتم دیگه لا حولا بوجود و لا قوتا بوجود چیز ایک نکرده بسید پشکی که میگیم خوابی، بیداری از ما هر دو رو رفتیم یعنی هر دو بشن با تنبیم بخونیم چی؟ لا هولن ولا قوتون اگر هر دو رو رفت بدیم چند تا تدکیب یک الان ابتدا بگیم لای نفی جنس عمل چی لای مشبهتون به لیسه عمل نکرده چون لای مشبهتون به لیسه نزده بنی تمیم عمل نمی یعنی لا و لای مشطعتون به لیسه نزد نزده بریتنین و بگوییم لا عمل نکردو فقط نقید عمل نمیکنه لذا حولون و قوتون میشه چی؟ محتدا یعنی حولون موجودون و قوتون موجودتون اون لا عمل نمیکنه الا بالله که الا بالله مطلبون موجودتون موجودتونه و الان ما یه مبتدا داریم یه خبر مبتدامون که حولن خبرمون که موجودونه مقدر مقتدامون که قبطان خبرمون موجودتونه مقدر لا هم عمل نکرد خب در این صورت با چند جمعه داریم؟ دو تا. یکی حولن موجودون یکی و قبطون موجودتون انگار اصلا لای در کار و این برابر اونیه که ما لا رو ملغا کنیم لای مشبرتون به لیسر رو چی کارش کنیم؟ ملغا کنیم یعنی بگیم عمل نمیکنه. لا لای مشبرتون به کجا عمل نمیکنه؟ نزد آقایونه بنی ترست شد این یک میگه رفعه ما علل ابتدا هر دو رو رفعه بدیم بنابر ابتداییت و خبراشون محضور و نزد بنی تمام. او علل اعمال عمل لیسر یا هر دو عمل بدیم عمل لعیسه یعنی بنابرای قول اجازیگی لای مشبرتون به لعیسه و ما عمل میکنه عمل لعیسه اما نزدیکی اجازیگی خب بنابرای قول اینها چجور ترکیب میکنیم؟ میگیم بوده لا حولم موجودن و لا قبطون موجودتن موجودن موجودتن الا بلا و دو تا لایه و خبراشون او هم اون بالله و و و او, او على اعمال چا این هم ترکیب چندم دوم بچه بچه دوم چند ترکیب داشت از سالس سه سوره، صورت از ساله صورت فت و رفت او ثانی فت بدیم به اولی و رفت بدیم به ثانی بخونیم چی؟ لا هوله ولا قوتون لا هوله ولا تن الا بدم او لا هولهش وقتی اولی رو فت بدیم لا شمالاییه نفیه جنسی قبرش هم محصول یعنی لا حوله موجوده اون بیره کنه این ولا قوتونش چطوره میگه بلعت فعلا محل به این که رو اینطور ترکیب کنیم بگیم واق واق عاطفه وا, لا زائده مثل ولا زالی تحکید نفیه لا یه نفیه جنس قبله آی نفع نفی لای نفی جنس قبل رو میکنه قوتون عطف بر محل بعید اسم لای نفی جنس خب اون حولک که اسم لای نفی جنس قبل از اینکه لا چی بوده مبتدا بوده دیگه مرفوع بوده این عطف بر محل بعیده اسم الله شده ها اسم الله لفظش چیه حولا حولا میگن باشه محلش چیه منسوبه چون اسم الله باید منصوب باشه قبل از اینکه لا چه محلی داشته مرفوعه عجب اون محل قبلی محل دوره آه. نه محل قریبش محل قریبش نصب است اسم پس چی شد؟ رفعستانی بلعت اله محل یعنی محل اسم لا کدوم محلش؟ محل فنگش و قوتون موجودون بود دیگه خبر لا اونی چی؟ الا بالله متلمون موجودون اون موقع در این صورت ما حالا چند جمله داریم؟ یه دونه جمله داریم چرا لا لا موجودون و قوتون عطف شده به جای چی؟ جمله بگید واو مفرد رو یک اسم رو به جای یک اسم دیگه عد کرده نه جمعه رو به جمعه در این صورت ما یه جمعه رو دیم یا میتونیم ترکیب دیگر بکنیم در صورت سه با بگیم اولی بوده لا حول موجود اون لاش لایه نفیه جنسه دومی ولا قوتون رو لایه مشبهتون به لیسه بگیریم بگیم بوده لا قوتون موجوده تن. لا قوتون موجوده تن الله. باز در این صورت و چند در جمله داریم؟ دو جمله داریم یکی لا حول موجودون یکی لا قوتون موجوده تن. موجوده تن. <تصفح> او به اعمال ثانیت که لیسه این هم بچه سفر که باز دوتا ترکیب دیکی یعنی قراعت چهارون عرابه اون و سالس عکس سه یعنی چکار کنیم اولیش رو رفت بدیم دو بومیش رو فتح بدیم مبدی بر کنیم. بگیم لا هولون ولا لا هولون ولا اینه چجور تحکیب کنیم اون ولاقوتش معلومه چیه؟ لای نفی جنس هست ولاقوت موجوده تون اون جمله مشبه فقط میبینه لا هولون لا هولون چنده برکیب داره؟ الان میگه میگه الا اعمال ال اول میتونیم بگیم که لای اولی لا هولون چیه؟ مشبه هاتون هست عمل کرده لای اجازی هاست بوده لا هولون موجود يعني. ما چند جمله داریم؟ دو تا لا هولون موجودن یا میتونیم بگیم عمل نکرده ملغاش کنیم از عمل نزده بنی تمیم بگیم بوده چی؟ لا هولون موجودن لا موجود موجودن هولون مبتدا موجودان خبر لا هم عمل نکرد اگه بگن چرا لاامن نکرد میگیم چون نزد بنی تمیم لای مشرباوند به عمل پس لای دوم شد لای جنس لای اول دو تا تاکید نزد اجازه ها عمل کنند نزد بنی تمیمی ها عمل نکنند و موقشلا این انقراات 4 ال خامس و دراحت آخر خوب گوش کنید اینو ال خامس بعد اول اول بعد بدیم به اولی بخونیم لا حوله خب موقع میشه لاشلاه چی؟ نفیجه؟ لا حوله بعد خود اولی و نصب و ثانی اما به دوبامی نصب بدیم اعراب بگیم ولا قوه تن ولا قوه لا حوله ولا قوه تن لا که مشخص شد لا نفیه جنس شد قوبتنش چی؟ قوبتنش کار کنیم میگه بلعد فعلا لفظه به اینکه قوبتن رو عد میکنیم به جای لفظ لا هوله. لفظ لا هو مذیرا باشه باشه تا آخر به نصب جایی برسیم افعال المقاربه افعال چیه مقاربه چی, چی؟ گفتین افعال مقاربه اما عمل افعال ناقصه رو میکنن و فرقشون اینه که چی فقط اینها خبرشون خبرشون جمله مضارع فعل مضارع اما خبر افعال ناقصه میتونه چی باشه فعل مضارع باشه میتونه فعل مضارع نباشه جزء دیگه حال افعال المقاربه و, و یک قاعده یک کربت او شکسته میگه اینا لدنو خبر برای دو نوخ بهبرن دو یعنی چی دنایت نزدیک شد دو بخبر خبر یعنی دو خبره بل خبر لن اسم دیگه یا اینا لن دیگه یعنی نزدیک شدن خبر به چی به اسم یعنی شما میگید کاد از یک تو از یک تو یعنی چی یعنی یک توبه که خبره نزدیک است که به ذهب بگید یعنی به چست کن یعنی دو به خبر به کارد ازیدون یک دو لدو نو بلخبر لدو نو بلخبره درمیز. اصاب اصابر چیه لرجاعی ها میخوره به خبر لرجاعی یعنی لرجاع وقوع الخبره لل اس رجاعی یعنی رجاع خبر رجای خبر برای کی؟ امید خبر برای کی؟ برای اسمش یعنی وقتی شما گفتید اصا ربكم بکن انیر همکن اصا میگه چی؟ میگه انیر همکن امید است که بر رب شما چیه؟ واقع شد. رحمت او محیم. نزدیک است امید است که برای رب واقع بشه. رحمت کردن به شما انیر همکن رحمت کردن به شما نزدیک است که برای رب به شما چیه؟ واده بشه امید است برای رب به شما واده یعنی امید بودن وقوع خبر برای لرجا انشعه و تفقه چیه؟ برای شنور تفقه یخسفان علیه ما منور اقیل یخسفان بسار تفقه یعنی شروع کردن آدم و هفوا یخصفان علیه ما این که به بچسبانن بر خودشان یخصفان علیه ما برقل جمعه از امراغ از برگی در بهشت برای خود توششی درست کنن بعد از این که بعد از این و نافرمانی ریخ انشعه و تفیقه اینم دو تا انشعه تقربه. فل خبر یعنی شروع وقوعِ خبرِ برایِ اسم بز یه عدهشون میان که بگن خبر نزدیک است که برای اسم واقع شده یه عدهشون میان میگن چی؟ امید است که خبر برای اسم واقع شده یه عدهشون میان میگن چی؟ وقوعِ خبر برای اسم شروع شده و تعمل و عمل کانه اینو عمل چی رو انجام میدن؟ عمل کانه تعمل و عمل کنه. اما فیله هایی که خبر این ها واقع میشن فرد و اخبارو ها جمل و و تن به مزاره اخبار اینها، خبرهای خبر های این افعال مقاربه جمله است که مبدوط و یعنی شروع شده با چی شروع شده؟ به مزاره شروع شده با فیله خبر اینها جمله است که آغاز شده با فعل غیر مزاره خبر اینها با غیر حالا مزاره گای اوقات ان دارد گای اوقات ندارد در اونهایی که دلالت بر شروع میکنه اصلا نداره هیچ بر چرا چون شروع دلالت بر زمان حال میکنه و ان دلالت بر استقبال اینا دو تا با هم متناقض افعال شروع قطعا در اونها ان ناسبه وجود نداردن اون دو قسم دیگه گاییاره گای نداره این ها و یقل فل اولینه و قلبه دارد در اولینها هو ان ان مجرد بودن خبر از چی؟ از ان مشخصه؟ یعنی کاده و کربه مجرد باشه از انچه خیلی زیادی تو قرآن هرچی کار در ممارده یک کار در برگو یک کار در برگو یک کار در برگو یک کار در برگو یک کار زید و, و زید و موارد دیگه همه جا بدونه هنه و یقل بفید اولینه تجرده بود نه بود و ما کار دو ما کادو دو یقین که همینه تو کتاب عوامل خوندی. که گفتیم اگر کاده ماینافیه یا حرف نفر سرش در بیاد مثل فعل های دیگه است منفی بیشه یادون هست قبول مختلف به ما کادو یفعلون یعنی نزدیک اگه بود کادو یفعلون یعنی نزدیک انجام دارن ما کادو یفعلون یعنی نزدیک نبود انجام دارنشون یعنی انجام دارن آدم به ذهنش انجام دولن. و فعل اوسطه این پس در دوتای تای اولی بهتره که عن بگید. باشه. ولی در دو تای وسطی و فعل اوستاین او شکه و حسان. مشخصه. و فل اوستاین اقتران و گوله ها. اقتران یعنی چی؟ این شدن خبر به با او شکه که در قران نیست. ولی اصال هرچه چه در قرآن اومده همش با انه یعنی باقت فسیل اقترانه بوده ها اون که بگه قلبه دارد یعنی یه درست درست درست هم دیده شده که بگید ان نداره اونجایی که کادر یه درست درست درست دیده شده ان داره کادر هم میکنن به چی؟ که اصال کادر مشابه اصال شده مثل کادر فقرو انگیخون کپ را اگر نه اصا نداشت دوگه اینجا اصا هم شده به چی؟ بفاده. یکی دو درصد بیشتر نوا اسارت رب ان یرحمه کم اسمش مزاق مزاقه لع. ان ان ناسبه یرحمه کم فل زمیر فائل کم ان مستر میره محلن منصوب خبر و هیه فل اخیرت اینه یعنی ان و اون ان در دو تای آخری چیه؟ ممتنه ان در دو تای آخری ممتنه اتون. چرا؟ چون ان دلالت و استقبال میکنه و این دوتای آخری دلالت و شروع ممتنه اتون نوطف قضیدان چی؟ یک تو یعنی شروع که از زید بنویزه و اصاب و و کروان ملازمتون اتون حساب و انشعه و کرمه بقید چی دارن کرده موازی دارن دیدو مزاره؟ بنا بله. انشعه اگر مزاره شدیدید یه جا یونشعه دیگه به معنای بگید به معنای افعال مقاربه؟ نیست یونشعه مثلا میگم رعی تو خطیبن یونشعه او... کلامان رعی تو خطیبن یونشعه کلامان یعنی دیدم یک قطیبی رو که انشاء می کرد کلامی را دیگه اینجا به معنای اصلا آغاز می کرد بگید یونشه و کلامن چجور ترکیبش میکنیم یونشه و کلام رو؟ میگه یونشه و به زمین فایلش کلامن مخبول پس انشاء مازی به معنای افعال مقاربه اومده اما یونمانشه یعنی ایجاد کننده انشاء یعنی ایجاد کردن خلق کردن پس اصاب و انشعه و کربه ملازم اطول للموزی بقید مازی اما کدام مزارش هم بگید به معنای افعال مقاربه چیه؟ رسیده یکاد و برگو یخده و جا یکادو و یوشکو و یتفقو این ستا رسیده یک ها خیلی زیاده اما یوشکو و یتفقو چیه؟ یتفقو چیه؟ کمیه تفقه و کمی. مشخصه؟ پس بنابراین این افعال تاشون فقط مازی دارن یکیشون مزاره کسیر داره یک ها دو تاشون مزاره من یه نکته که اینجا هست ظاهر کتاب ما اینه که نوشته ابتدای کتابونی نگاه کنید نوشته کاده و کربه و او شکر. او شکر رو جزء چی دارسته؟ همراه کاده و کربه گفته اینا مال دو نوع خبره. ولی موقعی که میاد اون با تقسیم میکنه کدوم‌هاشون با ان میاد، کدوم‌هاشون با, با ان نمیاد، کاده و کربه رو میگه چی؟ بیشتر بدونه ان میاد. او شکر و اثار رو میگه چی؟ بیشتر با ان میاد، اون دوتا تا اصلاً نمیاد. یعنی اینا هر کدومشون چیه؟ یه اسمان ظاهرا اون بدوننبل خبر اشتباهاً جلوتر از اوشکه اومده یعنی باید بدوننبل خبر بره بعد از کربن میگه اینطور و یک کاده و کربن بدوننبل خبر یک اوشکه و عسا لرجای هی لرجاع خبر و انشاء و تفقچین ل شروع افن اون طلبان میشه چی یغن بفعل اولین در دو اولی و او تجربه تجربت هو ان ان درست؟ بدل آسطه این دوتای وسطی کرده دو برای رجا هست او همه خب برای رجا مثل اصال برگم نداری درست شد اقترانه هو با در دوتای آخری هم که افعال شروع هست انچیه محتمل گرفتی چی گفتم یا نه؟ اون لدونو خبر اشتباه جلوتر از اوشکه هست بذارید یه مرحله جدیدی